بخش سوم، هیوم شکاک معتدل سوای ریاضیات هیچ چیز را به یقین نمی دانیم. ولی با این حال باید زیست و زیستن عمل کردن است اعمال ما همه برپایه فرضیاتی درباره واقعیت است دیوید هیوم متولد سال 1711 میلادی و در گذشته به سال 1776 میلادی یکی از جذابترین و در ضمن مهمترین چهره ها در تاریخ فلسفه است. به نظر میرسد بدون مبالغه همه او را دوست می داشتند. هیوم چندین سال در فرانسه زندگی کرد. در آنجا او را داوید مهربان و در شهر زادگاهش ادینبرو دیوید مقدس می نامیدند. خیابانی که در ادین در آن به سر می برد، اکنون خیابان دیوید مقدس خوانده می شود. برخی از بهترین آثار او در سالهای جوانیش نوشته شد. هشت سال تمام روی کتابی که عموماً شاهکارش به شمار می‌رود، یعنی رساله درباره طبیعت آدمی در سالهای 1739 و چهل کار کرد و هنگام نشر این کتاب تازه 28 سال داشت. هیچ کس به این اثر اعتنایی نکرد. در سالهای دهی سوم زندگیش ایده های این کتاب را بیشتر پروراند و به صورتی در آورد امیدوار بود خاندنی ترش کند. نتیجهش انتشار دو جلد کتاب کوچکتر بود. تحقیق درباره فهم آدمی سال 1758 میلادی و تحقیق درباره مبادی اخلاق سال 1751. باز هم کسی توجه نکرد. پس دست کم به ظاهر از فلسفه دست کشید و در چهل و چند سالگی بین سالهای 1754 تا 1762 میلادی 6 جلد تاریخ انگلستان را نوشت که تقریباً 100 سالی معیار کار در این رشته بود تا اینکه تاریخ 5 جلدی مکولی در سالهای 1848 تا 1861 میلادی درآمد. هیوم در زمان حیاتش به عنوان اقتصاددان و مقال نویس شهرت یافت. یکی از نزدیکترین دوستانش آدم سمیت بود که معمولاً او را پایگزار دانش اقتصاد می‌دانند. خود هیوم هم نظریه های بدی ای درباره سیاست پولی به قلم آورد. به هر حال، امده شهرتش در فلسفه در زمان حیاتش به دست نیامد. سه سال پس از درگذشتش، در سال 1776 کتاب دیگرش گفت و شنود درباره دین طبیعی که بی سر و صدا روی آن کار کرده بود انتشار یافت در سال 1779 این اثر تیشه به ریشه همه استدلال‌های عقلی درباره وجود خدا می‌زد بسیاری این را بهترین اثر او میدانند. یک مشت احساسات هیوم مانند لاک معتقد به مقدمه بنیادی اصالت تجربه بود که میگوید نهایتا فقط از راه تجربه است که شناخت ما از وجود هر چیز خارج از خودمان میتواند به دست آید. خواه تجربه خود ما باشد، خواه تجربه کس دیگر. در ضمن همساز با بارکلی موافق این اصل بود که این مقدمه را باید یکدست و پیگیر به کار برد. و همین موجب شد با بارکلی هم عقیده شود که دستکم ما هرگز نمیتوانیم با یقین مطلق بدانیم که نوعی جهان مادی خارج از ما و مستقل از ما وجود دارد ولی هیوم این را در درجه اول حکمی درباره شناخت میدانست و نه حکمی درباره جهان رسیدن به یقین به ویژه در مورد امور واقع در حد ما نیست سراکار ما با احتمالات امیدوار کننده است، نه با قطعیات و یقینیات. هیوم اصل اعتقادی بارکلی را علیه خود او به کار برد. چه کسی تا کنون توانسته نفس خود را مشاهده کند، تا چه رسد به نفس دیگری؟ هنگامی که ما به درون خود مینگریم، در بحر تجربه های حسی، افکار، عواطف خاطرات و از این دست فرو می رویم. و اینها همه ناپایدار و گذرا هستند، ما هیچگاه از طریق اینها با گونه‌ای هستی دیگر یعنی نفس تجربهگر دارنده این تجربه ها روبرونه می شویم. از این رو بنابر این اصل که نباید وجود چیزی را که به تجربه در نمی آید مسلم شمرد دلیلی ندارد که فکر کنیم نفس تجربهگر به نحوی که بارکلی می گفت وجود دارد. نفس تجربهگر فائل شناخت به گفته هیوم نوعی پندار است. در این صورت اگر بپرسید من کی یا چیم، تنها پاسخی که پشتوانه تجربه یا مشاهده میتواند داشته باشد این است که من مشتی احساساتم معنی علت بارکلی دلیل مشابهی هم درباره وجود خدا ابراز میکرد وجود خدا پرسشی است مربوط به حوزه واقعیت اینکه خدا یا وجود دارد یا ندارد و پرسش های راجع به واقعیت یا راجع به وجود را فقط با مشاهده می توان حل و فصل کرد اما چه کسی خدا را مشاهده کرده است هیوم میگوید هیچ دلیل شهودی جدی برای وجود او نیست و به سادگی نشان می دهد که آنچرا برخی مشاهده های دال بر وجود خدا می دانند همه استنتاجی غیر مستقیم و مبهم است به نظر هیوم در این زمینه حداکثر اکثر میتوان گفت که میزان نظم مشهود در کائنات احیانا نشانه چیزی است که شباهتی بسیار اندک به یک عقل مدبر دارد اما این کجا و برهان داشتن برای وجود خدای شخص خدای مسیحیان یا یهودیان کجا و احساس یقین با علم یقینی تفاوت دارد استدلال هیوم هم در مورد خدا و هم در مورد نفس در اساس شکلی یکسان دارد میگوید مدعی برای وجود این دو باید بتواند از تجربه مبتنی بر مشاهده حجت آورد که چنین تجربه هم وجود ندارد او سپس همین شکل اساسی استدلال را به نحو بسیار موثری در مورد رابطه علت و معلول و خود علیت به کار می برد. برای کسانی که تازه به فلسفه رومیا آورند معمولا روشن نیست چرا فلاسفه به علیت این همه اهمیت می‌دهند اتفاقا علیت در نزد دانشمندان هم از اهمیت بارزی برخوردار است دلیلش آن است که علیت ظاهرا همچون شیرازی است که تمامی جهان شناخته را به هم پیوند می‌دهد و به همین سبب است که کیهان گونهی آشوب یا kaos نیست یک رویداد موجب رویداد دیگر یا معلول آن است و در بسیاری از این رویدادها نظم پایدار وجود دارد آنچنان که های گوناگون به صورتی که برای ادراک ما قابل فهم است به هم ربط می‌یابند و بدین ترتیب برای ما میسر می‌شود که از محیطمان سر درآوریم اگر این پیوندهای اللی وجود نمی‌داشت های ما قابل فهم نمی‌بود و در آن صورت حیات انسانی متمایز از حیات حیوانات مادون غیر ممکن می گردید فهم عادی پیوندهای اللی را مسلم می گیرد ولی دانشمند پیوسته در صدد است پیوندهای عللی تا کنون ناشناخته را کشف کند حالا اینکه فیلسوف درباره ماهیت خود علیت سوال میپرسد اینکه این پدیده شگفت چیست که بدون آن جهان معقول دیگر نخواهد بود علیت چیست به سخن دیگر از آنجا که فهم واقعیت بر حسب کلی ترین وجوه آن وظیفه فیلسوف است فهم الیت هم یکی از مشغله های امده اوست هیوم گفت که پیوند الی مشاهده شدنی نیست همانطور که نفس و خدا مشاهده شدنی نیستند ممکن است بگوییم مشاهده کرده ایم که رویداد ای علت رویداد بی بود ولی آنچه در حقیقت مشاهده کرده ایم چیزی جز این نبوده است که رویداد بی در پی رویداد ای رویداد چیز سومی را که همان پیوند اللی باشد و این دو را به هم متصل کند ندیده ایم ولی وقتی میگوییم رویداد ای علت رویداد بی شد فرق دارد با آن که بگوییم ای رویداد و در پی آن بی رویداد معنی آن این است که رویداد ای رویداد بی را پدید آورد و بی رویداد چون ای رویداد پس آنچه در واقع مشاهده کرده ایم صرفاً توالی دو رویداد است در حالی که پیوند اللی رابطه‌ای ضروری است ممکن است وسوسه شوید و بگویید بلی ولی من میتوانم با قطعیت بگویم که در این مورد ای سبب بی بود چون هر بار که رویدادی از نوع ای روی میدهد بدون استثنا رویدادی از نوع B در پی می آورد من قبول دارم که رابطه اللی به هم پیوستگی ساده رویدادها نیست ولی وقتی به هم پیوستگی ثابت و بی استثنا می بینید در می که پیونده اللی در کار است ولی این هم مشکل است چون شب همواره در پی روز می آید ولی روز علت شب نیست روز و شب هر دو علت دیگری دارند گردش زمین بر محور خود و به دور خورشید پس ممکن است دو چیز با یکدیگر پیوند ثابت داشته باشند بی آنکه که یکی علت دیگری باشد بدین ترتیب اگر به هم پیوستگی دائم حد اکثر چیزی است که می توان مشاهده کرد چگونه بین مواردی که رابطه است و مواردی که رابطه اللی نیست تمایز بگذاریم ما هیچ نمیدانیم این مشکل از وقتی هیوم آن را مطرح کرد، بسیاری از فلاسفه را سردرگم کرده و یک راست مسئله دیرینه دیگری را به میان آورده است. مسئله این است که اگر ما بر پایه تجربه های ما نتوانیم بگوییم که رویداد خاصی ضرورتا باعث رویداد دیگر می شود، تکلیف علم چه می شود؟ شاید در طول تاریخ هر بار که آب را حرارت دادند، در گرمای 100 درجه سانتیگراد به جوش آمده باشد. ولی این اثبات نمی کند که حرارت علت جوشیدن است و قطعا اثبات نمی کند که دفعه دیگر که شما آب را می جوشانید باز در صد درجه سانتیگراد به جوش آید شاید دفعه دیگر وضع جور دیگر باشد هزاران سال تمام قوهایی که اروپاییان دیده بودند رنگ سفید داشتند و مردم اروپا سفیدی قو را امری بدیهی و محقق می شمردند ولی وقتی استرالیا را کشف کردند به قوی سیاه برخوردند. پس هر اندازه هم قوی سفید ببینیم این تضمین نمی که قوها همه سفیدند. و این اصل در مورد هر دسته دیگر از مشاهده ها هم صادق است. هر قدر ایکس مشاهده کنیم که خاصیت ایگرگ دارد. این دلیل نمی شود که ایکس بعدی هم خاصیت ایگرگ داشته باشد. شاید نداشته باشد. ممکن است ما انتظار چنین خاصیتی را داشته باشیم اما این نوعی حالت روانی است که با برهان منطقی کاملا فرق دارد و چیزی جز تدایی معانی نیست علم منطق درباره رابطه میان گزاره هاست و یک گزاره ممکن است با گزاره دیگری متناقض باشد ولی یک واقعیت ناقض واقعیت دیگر نیست البته چنانچه هر دو به واقع روی دهند این مشکلی اساسی برای علوم به وجود می آورد قوانین علمی معمولاً گزاره های کلی و نامحدودند و در این حال به تبیین پیوندهای اللی هم می‌پردازند. گزاره‌ای مانند اگر مقداری آب را در محیط فشار سطح دریا دهید، حرارت به صد درجه سانتیگراد که برسد، آب جوش می‌آید. نه کلیت نامحدود این گزاره و نه پیوند اللی مورد تأکید آن را نمی‌توان با مشاهده یا تجربه ثابت کرد. پس چگونه میتوان برای این دو وجه این گونه گذاره ها اعتبار قائل شد؟ ما مسلما همچنان انتظار داریم که آب در صد درجه سانتیگراد به جوش بیاید ولی هیچ دلیل جدی در دست نداریم که حتما به جوش خواهد آمد و بنابراین اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم نمیتوانیم بگوییم میدانیم که آب به جوش خواهد آمد اگر به همین بسنده کنیم هیوم در نظرمان نظر من شکاکی تمام ایار خواهد کرد. آدمی که منکر است ما بتوانیم به چیزی یقین یابیم. چه وجود خدا باشد یا وجود جهان خارج یا نفس پایدار خودمان یا اصلا هر گونه پیوند مطمئن بین هر چیز با چیز دیگر در جهان واقعیت ها. ولی هیوم این را موضعی نظری می داند. منتها ما در عمل با این نوع نگرش زندگی نمی کنیم. علتش آن است که ما اهداف خود را در زندگی با عقلمان بر ما برای نمونه این همه کار که برای زنده ماندن می به این علت نیست که پس از سبک سنگین کردنهای بسیار به این نتیجه رسیده ایم که آری زنده بودن بهترین خط مشی است. آشق شدن ما یا لذت بردن ما از موسیقی یا مکیدن لب‌هایمان وقتی توت فرنگی می‌خوریم، از سر دلیل نیست. آیات رفتار ما را امیال ما، شهوات ما، عواطف ما، سلیقه های ما، خلاصه احساسات گوناگون ما تعیین می کند. و مهمترین موردی که پای عقل به میان می آید به هنگام گزیدن انواع و اقسام وسایل و وفق دادن آنها با هدفهای ما است. به عبارت مشهور هیوم، عقل بنده شهوات و احساسات است. بدین قرار هیچ کس نیست که از قضا خوردن صرفاً به این سبب خودداری کند که هیچ دلیلی وجود ندارد که دفعه بعد هم قضا حتما برایش مقوی باشد ما واقعا هم چنین دلیلی در دست نداریم ولی با این همه انتظار داریم کسی که قضا نمی خورد بمیرد بر روی هم ما همان کارهایی را میکنیم که محرک های عاطفی گوناگون ما را به انجام دادنشان برمیانگیزند. و در گزینش وسایل تحقق این اهداف همچنان به دنبال تداعی معانی معهود و مرسوممان خواهیم رفت گذینه های ما بر مبنای این فرض است که پیوندهایی هست که اثبات وجود آنها از عهده ما خارج است گاهی پای این فرضیه هم لنگ می شود. مردم اغلب چیزهایی میخورند که برایشان مضر است حتی گاه چیزهای کشنده میخورند. ولی حتی در سطح تئوری دست نیافتنی هم بهتر است که گاهی سرمان به سنگ بخورد تا اینکه بیکار بنشینیم و به این دلیل که نمیتوانیم به هیچ چیز یقین داشته باشیم هیچ کار نکنیم چون این در حقیقت یعنی چشمپوشی از زندگی با توجه به این وضع هیوم از آنچه خود شکاکیت خفیف مینامید دفاع می میکند می مقصودش از این اصطلاح آن است که باید به خود بقبولانیم که برهان قاطع جز در ریاضیات هیچ نقشی در امور انسان ندارد. ما به راستی هیچ نمی انتظاراتی داریم ولی انتظار که دانش و شناخت نیست. هیوم مانند لایبنیتز تأکید فراوان بر تمایز میان به اصطلاح امروزی گزارهای تحلیلی و گزارهای های ترکیبی گذاشته. و یاداور شد که در مورد گزاره های ترکیبی هرگز نمیتوان با قطعیت صد درصد به شناخت رسید. بنابراین در هیچ حوزه ای از جمله فلسفه، سیاست، علم و مذهب نباید به دنبال نظریه بود که همه چیز را توضیح دهند. چون وقتی از بابت هیچ چیز نمیتوان مطمئن بود، چقدر مسخره است اگر فکر کنیم درباره همه چیز میتوان به پاسخ رسید. نظام های باور عظیم و سازمانیافته در نزد هیوم محلی از اعراب ندارند. به نظر او ما باید اعتقادات و انتظاراتمان را با دودلی نگه داریم و بدانیم که اینها خطاپذیرند و زمنن عقاید و انتظارهای دیگران را محترم بداریم. بدین ترتیب سراسر مشرب فلسفی هیوم، همانند خلق و خو، شخصیت و زندگانی خودش فروتنانه، معتدل و بردبارانه بود دیدگاه‌های هیوم تأثیری عظیم و مداوم تا زمان خود ما برجا گذاشته است پاره ای از مسائل بنیادی که او ترک کرد از نظر شماری از فلاسفه هنوز لاین مانده است از همه بیشتر مسئله استقرا اینکه آشکارا محال است بتوان از نمونه‌های جزئی محدود هرقدر زیاد اما محدود به نتیجه کلی رسید سبک نویسندگی هیوم هم سرمشق بسیاری شده است چون نشان داد که می توان ای از جرفترین و دشوارترین مسائل فلسفی را با وضوح و زرافت طبع به تحریر آورد نه تنها نویسندگان بعدی انگلیسی زبان مانند برتراند راسل و ای جی ایر بلکه فیلسوفان فرانسوی و آلمانی هم کشیدند شیوه او را پیگیرند به عنوان مثال شپنهاور که از ابهام دامنگیر فلسفه در آلمان آن زمان بیزار بود، آگاهانه سعی کرد به سبک هیوم به آلمانی بنویسد. که حاصلش بخشی از بهترین قطعات منصوری است که تا کنون به آلمانی نوشته شده است.